این داستان حق آواز خوندن وقتی تانزیهن آواز خودش رو در تالار راج به هایرادی تمام کرد چشمای اکبرشاه از شادی برق زدند اکبرشاه گفت این یه آواز آسمونی بود تانزیان تو بهترین موسیقیدان دنیایی چطور میتونم تو رو مفتخر کنم هیچ کدوم از درباریا حرفی نزدن اونا به خوبی میدونستند که کی باید صحبت کنن و کی خاموش باشن تا اینکه خود امپراتور اعلام کرد آه بله باید اینطور بشه هیچکس حق نداره به جز تانزیان در خیابانهای شهر آگرا آواز بخونه منظورم اینه که هیچکس نمیتونه بهتر از تانزیان آواز بخونه پس باید فقط صدای آواز و موسیقی تانزیان در فضای شهر بپیچه شیرین ترین، ترین و خوش آهنگ ترین و بهترین موسیقی رسمی هند جارچیان در شهر پراکنده شدن و تبلها را نواختن و این موضوع رو به اطلاع مردم شهر رسوندن چند روزی از این تصمیم نگذشته بود که گروهی از موسیقیدان های فقیر و گرد، اومدن به شهر آگرا اونا که دستور اکبرشاه رو نشنیده بودند از محلی به محلی دیگه می و ترانه در متح و ستایش پروردگار می خوندن. نگهبان های کاخ متوقفشون کردن و رئیسشون گفت شما حق ندارین در خیاب اونهای را آواز بخونین این دستور شاهه پیر مرد گروه گفتش آیا به دستور فرمانده بزرگ موسیقی از این شهر تبعید شده؟ رئیس نگهبان خشمگین شد و گفت پیر ابله ساکت شو اکبر شاه فقط میخواد صدای زیباترین خاننده در این شهر به گوش برسه بنابراین فقط تانزیان حق داره توی شهر آگرا آواز بخونه. پیرمرد روی حرف خودش محکم با و گفت کسی حق داره با خداوند گفت و گو کنه. فرمانده یه نگهبانا تمام گروه رو برد به حضور اکبرشاه و موضوع رو گفت. اکبرشاه گرگر گفت فکر میکنید شما بهتر از تانزیان میتونید بخونید؟ اصلا شما موسیقی میشناسید؟ پیرمرد گرد گفت طنزین هدیه خداوند به شماست اما هر آدمی چه صدای خوب و شیرینی داشته باشه چه نداشته باشه این حق رو داره که برای خداوند آواز بخونه سیبیل‌های اکبرشاه به لرزش در اومدن صورتش سرخ شد و نعره کشید چطور جرأت می‌کنی از فرمان من سرپیچی کنی چطور به خودت اجازه میدی که با گستاخی تمام با من بحث کنی تو مستحق زندانی بعد ناگهان چشمش به یه پسرک ده ساله افتاد و به فرمانده نگهبانا گفت بذارید اون پسر بره اون جوانتر از اونه که معنی دستورات ما رو بفهمه. پسر که بایجو نام داشت آزاد شد. او هم کنار پیادرو ایستاد و در حالی که با چشمه پر از عشقش حق هق می کرد با خودش گفت حالا کجا میتونم برم؟ نزدیکترین و عزیزترین کسام رو انداختن تو زندان. بایجو صدای ملایمی از پشت سرش شنید که می گفت پسرم چرا داری گریه می کنی؟ سرش رو که بالا گرفت پیرمرد ریش بلندی رو دید که چشمای درخشانش رو با دقت بهش دوخته بود بایجو با حیجان بهش نگاه کرد و آروم شد پیرمرد او را در آغوش گرفت و گفت با من بیا منم تو این دنیا کسی رو ندارم و تنهای تنها هستم در یک کلبه نزدیک ساحل جامونا زندگی می کنم. از اینجا زیاد دور نیست. بایجو، حقه هق کنان پرسید. اصلا تو موسیقی می دونی؟ می به من یاد بدی؟ می خوام بهتر از تانزیان موسیقی به و آواز بخونم. پیرمرد گفت. موسیقی همون چیزیه که تمام عمرم را صرف آموختنش کردم. البته این کار را به خاطر پول نکردم. من فقط برای خوشنودی خدا و مردم می نوازم و می چیزی رو هم که بلدم بهت یاد میدم حالا بگو اسمت چیه من بایجو هستم بعد بایجو تعریف کرد که چطور نزدیکترین و عزیزترین کسش رو انداختن زندان و در حال حاضر هیچکیو نداره که ازش مراقبت کنه ادامه داد شما هم فرمان اکبرشاه رو شنیدین که گفته هیچکس کس به جز تانزیان حق نداره توی این شهر آواز بخونه مگه اینکه بهتر از تانزیان بخونه و بنوازه پس من میخوام بهتر از جانزیان بشم پیرمرد در حالی که بایجو رو به سمت کلبه خودش می برد گفت من تا اونجا که بتونم کمکت می کنم تا به آرزوهات برسی بقیه کارها دست خداست بایجو سالهای زیادی رو در کنار اون پیرمرد سپری کرد و پیرمرد تمام اون چی رو که درباره موسیقی و ملودی ها می دونست و راز و رمز های مربوط به اون رو به بایجو یاد داد بایجو در تمام مدت چیزهایی رو که آموخته بود زمزمه می کرد. موقعی داشت منزل تمیز میکرد موقع جمعآوری هیزم، موقع پختن غذا یا جوش آوردن آب پیرمرد هم اونو تشویق میکرد تا نوتها رو صحیح اجرا کنه. ده سال به این وضن گذشت و باییجو ده سال با سرسختی در کنار پیرمرد به یادگیری موسیقی پرداخت یه روز از معلم خودش پرسید آیا به نظرت من میتونم بهتر از تانزیان آواز بخونم پیرمرد گفت بله بهتر از تانزیان اما بایجو که هنوز میترسید دوباره پرسید این لطف شما نسبت به منه تانزیان هدیه خداوند برای درباره پیرمرد کف دست خودش رو روی سر بایجو گذاشت و گفت تو هم حدیه الهی برای این جهان هستی پرنده ها و جانورانی رو دیدم که آواز تو رو گوش میدن فکر نمی کنم موسیقی تانزیان بتونه اینطور پرنده ها و جانورا رو افسون کنه روز بعد بایجو به خیابان‌های آگرا رفت و آوازهای استثنایی مقدس را سر داد. مردم برای شنیدن آوازهاش از خونه بیرون می‌آمدند. صداش به قدری شیرین و دلنشین بود که مردم به هم می‌گفتند او از تانزیان هم بهتر می‌خونه. چند نگهبان که از اونجا عبور می‌کردند، افسون موسیقی او شدند. هر چند زمانی که بایجو خوندن رو تمام کرد نگهبانا به یاد اکبرشاه افتادن و اونو دستگیر کردن و بردن به حضور امپراتور امپراتور نگاه آلودی به بایجو انداخت و گفت تو از دستور ما مطلع نبودی بایجو به آرومی گفت چرا فرمان شما شنیده بودم اکبرشاه صدای خودش بلندتر کرد و گفت پس چرا ازش اطاعت نکردی بایجو گفت فرمان شما اینه که فقط کسی که بهتر از تانزیان باشه میتونه در خیابونهای آگرا بخونه شاه خونسردی خودش رو از دست داد و گفت اوه چه تکبری قبل از اینکه بایجو بتونه پاسخ بده تانزیان مداخله کرد قربان اجازه بدید این مرد جوان مرد جوان گفت اسم من بایجوه تانزیان با اطمینان خاطر گفت اجازه بدید بایجو هم بخت خودش رو امتحان کنه من افتخار می کنم که ثابت کنم اون حریف من نمیشه. رقابت آغاز شد. اول بایجو شروع به خوندن کرد. موسیقی و صدای او واقعا الهی و بهشتی بود. حتی تانزیان در مقابل او خودشو گم کرده بود. آهویی که توی چمنهای بیرون قصر میچرید داخل تالار شد و خودش رو به نزدیکی بایجو رسوند. مرد جوان بلند شد، تاجه دور گردن آهو انداخت و خوندن خودشو تمام کرد. آهو خرامان خرامان از تالار خارج شد. بایجو به سمت امپراتور برگشت و گفت علا حضرت پاینده باشد اگر تانزیان بتواند به آواز خود آهو را دوباره به کاخ برگرداند من میپذیرم که در زمان ما هیچ موسیقیدانی برتر از تانزیان نیست. امپراتور با سر به تانزیان اشاره کرد که شروع به خوندن کانزیان با صدای پایین شروع کرد بعد صدای موسیقیش کم کم اوج گرفت او بی نهایت کار خودش رو خوب اجرا کرد اما نمیتونست به خوبی بایجو بخونه آهو به تالار برنگشته بود چون او یه مدت طولانی آواز خوند و به نفس زدن افتاد یه ترس ناشناخته به جونش چنگ انداخته بود اینکه چطور میتونست از این معضل خلاص بشه ناگهان فکری به خاطرش رسید آهنگ خودش رو تمام کرد و تنپور رو یه پهلو روی زمین گذاشت. تنپور یه نوع دستگاه موسیقی زهیه. اکبر شاه به در اشاره کرد و گفت از آهو خبری نشد. تانزیان گفت علا حضرت اومدن آهو یه اتفاق بود. اگه یه دفعه دیگه بایجو بخونه و اون آهو وارد بشه من شکستم رو میپذیرم. بایجو سرش رو خم کرد و گفت شرط تانزیان را میپذیرم شاه علامت داد نوتهای موسیقی تمام سالن رو پر کردن این بار گله آهو وارد تالار شدند و یکی از اونا دست گلی برگردند داشت او به بایجو نزدیک شد گردنش را تکون داد و تاجه گل از گردنش روی تنپور بایجو افتاد درباریا به شدت دست میزدن اکبر شاه خاننده رو مورد خطاب قرار داد و گفت بایجو چطور میتونم ازت قدردانی کنم؟ صدای بایجو واضح و روشن توی سالن قصر پیچید. آلی جناب دوستان و خیشان منو آزاد کنین. اونا ده ساله به جرم آواز خوندن در خیابانهای آگرا دستگیر و زندانی شدن. اجازه بدید همه خواننده ها حق داشته باشن در خیابونا برای مردم و خداوند بخونن. من هیچی برای خودم نمیخوام. امیدوارم از شنیدن این داستان هم لذت برده باشید. امیدوارم از شنیدن این داستان لذت برده باشید.